بسیه چلو پنجان لله رب العالمين و صلی محمد و حال داخلی کعیفت پرد و شرطیتن بای اوقات شرطیت فتجزم و لفی پت میده به دو نظر که ها که گفتیم معمولا اونها هم قائلن که کعیف و ما هستش یعنی ما رو هم بهش چه میکنن مثل عینه که عینه ما میگن کعیف رو هم کعیف و ما میگن نبت دستد ولی خب بدون ما هم کم استعمال شده و جذب میدن باش دو تا میگن کیف و یا کیف و ما تجلس اجلس از نظر ترکیبی چطور ترکیب میکنن؟ میگن کیفه یا کیف ما لفظاً مبنی بر بعد محلاً منصوب حال از برای فاعل فعل شرطش یعنی تجلس تجلس فیل زمیر فاعلش اجلس فیل زمیر فائلش فیلش هر جزاش نکته ایرم که توش سکر بکنن اینه که دوتا فعلش فعل هر و جزاش یک شکل و یک معنا یعنی نگاه کنید کیفت تجلس اجلس کیفت تأکل آکل هر تا تو بخوری منم می خورم ما تذرب تا آخر پس بنابراین کیفه یا کیفما به عنوان اسم شرط استفاده شده و جزم دوبل رو داده در نزد آقایونه بسیبی ها قائلند که خیر این به عنوان عداد شرط جزم دهنده به کار استفاقیت و مثل دوم دوم کیفه استفهامی به کارید از عزات استفهامی موقعی که کیفه در بر گرفته معنای شرط رو یعنی این شرطیه رو شده مفتی موقعی که استفهامیه بر گرفته معنای همزه استفهام رو شده چی مفتی شباعت معندی و استفهامی یدن و طبع و پس باقی میشه چی خبر خبر واقع میشه حالا یا خبر برای مبتدا یا خبر برای کانه یا خبر برای چیزی همسانی حالا نگاه کنید فتقه و خبرن به نهوه کیفه زیدون گرسید کیفه زیدون. یا کیفه همتن مثال تکراریه کیفه خبر مقدم میگه لفظن مبنی برفت محلن مرفوع خبر مقدم زیدان محتده ماخر حالا چرا اینجا خبر باید بر مبتدا مقدم شه؟ زیرا که خبر دارای زیدان کیفن و مفعولن گایی اوقات مفعول واقع میشه آه؟ مفعولن بقلش بغلش سی سانین مفعولن سانین بینم بیر کیفه زنن تا خب اصلش چی بوده؟ کیفه زن انت بوده روی کیفه زیدن مقتدابا خبر همون کیفه زیدنه بعد شما افعال غلوب بر سرش در میاری افعال و غلوب که در بیاری چکار میکنه؟ ها کیفه رو نمیتونه روش عمل بکنه روی لفظش محلا میشه منصوب اما زیدان رو روی لفظش عمل میکنه میشه چی؟ کیفه زیدن بس چیز میشه کیفه زننته زیدن کیفه میبهده جلو به خاطر صدارتش زننته معخر میشه زیدنه منوان مفعوله او مفعولن ثانیه فی نه به کیفه زننته زیدن پس اینجا الان چیه محلن کیفه منصوبه مفعوله ثانیه زننته فیروف و زیدن از ممکنه؟ بسرش مثلا بسر اون کیفه زیدون کانه در بیاد اگه کانه در بیاد میشه چی؟ بازم میشه منصوب به عنوان خبر میشه کیفه کانه زیدون اله اگه بگیم کیفه کانه زیدون کیفه میشه معلم منصول خبر کانه کانه فعل ناقص زید است. کیفه زنن تا زیدون و حالاً و گاهی اوقات حال واقع میشه فی نه به در مانند این مثال کیفه جا از زیدون کیفه نو کلم و منکان فرمهده سبیگه که تو همین کتاب و همین کتاب اعوانه کنید کیفه نو کلم و منکان فرمهده سبیگه کیفه نو کلم و یعنی چی؟ یعنی چگونه صحبت به دیگه؟ در چه حالتی صحبت به دیگه؟ کیفه الان میگید لفظا مبنی بر برفت محلن منصوب حال از برای زید چون سوال از حالتش بکنید یه حیمتش جا افر زید باهل حالا چرا حال اینجا واجب مقدم شد؟ به خاطر که دارایی مشخص خب. بریم سر لو لو رو هم باز ما بحثش بکردیم که ادات شرط غیر جازمه در مازید عدات شرط غیر جازمه در مازید اردو شرطي میگه لو گای او میگه چی میشه فتقت تزی امتناع از شرط ها و استلزام جواز ها ها الان مثلا شما میگید که فرض لو جئ اتنی لا اکرم لو اتنی لا اکرم تو کرد یعنی یعنی اگر اومده بودی پیش من من چی باید میکردم؟ اکرامت میکردم لو جهتنی لا اکرم الان کرد میگید لو عدات شرط جهتت فعل و فایل نون و قایه یا منصوب به نظر خوابش. لو جهتت علیه لو جهتنی جهتنی فعل شرطش لام در جواب لو اومده که فیل مازی مصبت اگه در جواب لو بارشه نوت درصد لام ده لوگان دیه ما آله حتی در لام لفت داره لو جهتنی لا اکرم, اکرم توکن اکرم کرد فیل و بایل و جواب جوابو شد جزمم نمیده لو جهتنی لا اکرم توکن یعنی چی؟ یعنی اگر اومده میده باشه من اکرام توکن حالا این لو چه اختزایی داره میگه لو شرطیه است. یعنی دو جمله بعدشه جمله اول سبب است جمله دوم متسبب شرطیه یعنی این دیگه جمله اول سبب جمله دوم متسبب این لو شرطیاتن فتقضی اختصار میکنه ها میکند امتناع شرطها اقتضا میکنه که شرطش منفی شده شرطش شده چی؟ منفی یعنی الان آیا او آمده بوده یا نیومده بوده لوجه تنید ارکن لو میگه که آمدن از او سر نزد لو میگه اومدن از او چی بوده؟ ممکن. این خاصیت لست که فهمون که آمدن از او شده چی؟ ممکن؟ تختزی امتناش هست این یه دونه از چیزهایی که میفهمونه و استلزامهو لجوابها و تفت از استلزا محول استلزامهو مستلزم بودنش رو درست شو مستلزم بودن این شرط رو لجوابها برای جواب ل. و میفهماند که این شرط مستلزم جوابه یعنی اون جواب مسبب از این چیه شرط؟ اون جواب مسبب از این شرطه یعنی اکرامی که اکرامی که مسبب از چی بوده آمدن بوده آیا اون اکرام اتفاق افتاده یا نه افتاده اون اتفاق نبده شد سببش تریده نشده دیگه اتفاق شده یا نه لو دو تا چیز رو میفهمونه یکی میفهمونه که فعل شرط من امکانش نشده به دست نیامده است. این یک مطلب دومی که میفهمونه اینه که اون جوابی که شما دارید دیوید، اون جواب متبع از این فعل شرطه. و این فعل شرط سبب است برای او. دروچو این دو تا خب بعد از این عبارت بعد از این عبارت می که من غیره تعرضه یعنی بعد از اون من و استنظام حول جوابها دو کتابهای مثل کتاب سیورتی و دیره این من غیره تعرضه برای اینکه درستش کنن من غیر تعرضه لیمتنال جواب بلا سبوتی اینو می نویسن من غیره تعرضه لیمتنال جواب بلا سبوتی چرا؟ ببینید اگر اگر من اومدم اینطور تعریف کردم لو رو لو رو اینطور تعریف کردم که لو دو خاصیت دارد یک اینکه لو لو ترخیز که می فرماند به شرطش منتفی شده است یک و حرفی که میفهماند فهماند جزای شرطش مسبب از فعل شرطش خب الان اکرام کردن من اکرام کردن من ممکنه چند تا سبب داشته باشه فرض کنید ممکن ده تا سبب داشته باشه. یکی از سببهاش چیه اومدنه یکی از سببهاش اینه که شما بیاید درسته تا من اکرام کنم این یه دونه اکرام که سببش چیه؟ آمدنه این یه دونه شده چی؟ ممتنه یعنی ما فهمیدیم که این یه دونه ممتنه شده به چه لید؟ به دلیلی که علتش که آمدنه به وجود دقیقا. ولی آیا اکرام های دیگر که سبب چیه؟ ممکنه غیر از اومدن باشه آیا اونا ممتنه؟ اونا دیگه نه اونا رو کاری به کارش نداره من غیره تعرضه بدون اینکه لو تعرضی داشته باشه به اینکه جوابش ممتنه از مطلقا یا ثبوط اون رو بفهمونه مطلقا کاری به کارگین این حرفها بگیر نه. یعنی فقط میفهمونه که فعل شرط من مطلقا منفی است و جزای شرط من مصبر همین فعل شرط جزای شرط من مسبب از این فعل شرطه این مقدار نمی اما اینکه آیا جزای شرط اصلا وجود ندید این اصلا کاری بگم مثلا من میگم نگاه کنید لوکانت شمس طالعتن لوکانت از شمس و طالعتن لکانت حرارتو موجودتا. لکانت على حرارتو موجودتا یعنی چی؟ یعنی اگر شمس طلو کرده بود خورشید طلو کرده بود حتما حرارتی بود وجود داشت گرما وجود داشت اینو میگه نه؟ اینو در میگه حالا این لو چی میفهمونه؟ میفهماند که شمس طلو نکرده بهلشت ممتنه آیا حرارت هم اصلا نیست؟ یعنی ما الان سرد سرده مونه؟ نه اینو نمیزه که اصلا حرارت وجود مده. می حرارتی که مسبب از طلوع شمسه اون حرارت شده چی؟ منفی چون سبب شده؟ منفی می که استنظام دارد این طلوع شمس جواب این دور اینو میفهمه یعنی حرارتی که از وجودش هم مقاصد در بیاد این ممتاز اما آیا حرارت رو به طور مطلق نفی میکنه پس اونهایی که تو کتاب های ببین اینجا دقت فرق ها اونی که تو کتاب های قبل خوندیم که لو حرف امتناع است ل امتنائن لو حرف امتناع ل امتنائن این مطلب دقت گوش نشود چون درست لو حرف امتناعن. لو حرف امتناع هست اما نسبت به فعل شرط خودش اما نسبت به جزای شرط خودش امکان نمیاره جزای شرط خودش اون مقداری که مال فعل شرطه بگید در خصوص فعل شرطه میشه منفی اون مقداری که در خصوص فعل شرط نیست کاری کارش نه ممکن اعراض در اثر نار بر اثر چیزای دیگه وجود بله دقت بله یه جا هست اگر این دو تا سبب مساوی باشن علت دیگری برای جزا غیلتی وجود نداشته باشه اونجا میشه پردوم منفی مثلا من میگم لوکانت شمس و طالعتن لوکانت شمس و نهارو موجود نهارو چی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه خرشی طلوع کرده بود چی میشد؟ روز میشد خرشی طلوع نکرده روزم نشد خب الان میشه بگیم که خورشید طلوع کردنش محال شده نیست ممتدی روز هم روز شدن چون یه سبب بیشتر نداره به عنوان کلی یه سبب بیشتر قطعا نداره اونم طلوع خورشیده پس روز شدنم به طور قطع شده چی من. این یه جا میتونیم بگیم که دو تا با هم متوازیان هر دو ایند بقیش، پس لوچه اجزای میکنه لو اجزای این را دارد که چی که فعل شرط من منفی جزای شرط من اون مقدارش که مسبب از فعل شرط شده چی؟ منفی اما این که آیا جواب شرط به طور مطلق منفی اینو کار به کارش بگیرید نداره همین مقدار بودش داشت لذا ببینید گفتش پایین میگه که و استلزام امول جوابی هی من غیره تر روز من غیره تر روز لیمتناه الجواب ولی بدون این که تهروز کنه low بدون اینکه لو ای و ما این رو بپهمونه که این جوابش هم ممتنع شده یا بیاد جوابش رو ثابت کنه نه با جواب کار داره نه با نفیر. بلکه فقط میگه جواب مسبب از این فعل شرطه بعد ما میپهمید فعل منفی شده پس جوابش هم اون مقداری که مال این فعل شرطه اون شده چی؟ منفیر مشخص بعد نگاه کنید اونبالاش بسال بزنه فإذا قلت لو قام زیدن قام امرؤ اونو بکنید لو قام امرؤ لو قام زیدن لقام امرؤ اگه شما بگید لو قام زیدن لقام امرؤ هیچکینو میفهمه لو قيام زیدن که فعل شرطه محکوم به انتهای یعنی امتناعی دیام زید که فعل محکوم است به منتفی بودنش در بازشته اینو صد درصد میفهمونیم صد, می صد درصد میفهمونی که فعل چیه؟ منفی شد و یه چیز دیگه میفهمونه و به کونهی و میفهماند به بودن این قیام مستلزمن صبوته اول صبوت قیام منعف میفهماند اینکه مستلزم بوده وجود این قیام یعنی اگر این قیام وجود پیدا میکرد مستلزم بوده به وجود قیامی برای هم یعنی اگر قیام اول به وجود میامد مستلزم قیام هم میشه این رو هم میفهمونی یعنی به نیشون سبب رو میفهمونی حالا پس با عقل ما میفهمیم که اون مقدار از دیام یعنی اگر قیام هم مثلا ده تا سبب داشته باشه اون یه دونه سبرش که چی بوده؟ قام زهد بوده او یه دونه شده چی منفی اما آیا اون نقطه تا سبب دیگه هم شده منفی نه دیگه کاری به کار اونها نداره یعنی اگر من به شما گفتم لو قام ازیدون لقام امروز اگر زید ایستاده بود امرم ایستاد شما اینو از من شنیدید رفتید بیرون دید، دیدید امر وایز نمیتونید منو متهم به دروغگویی کنید بیا جواب بگیرید بگی تو دروغ گفتی بگم چی گفتم مگه؟ بگید شما گفتید لقام زیدون لقام امرون اگر از زید بیسته هم میسته ما دیدیم نشسته نه استاده. ولی رفتیم بیرون دیدیم هم استاده. من جواب شما چی بینم؟ میگم ممکنه قیام امر علت دیگری داشته باشه اون مقدار از علتش که قیام زید بوده اون چی شده؟ ملتفی شده ولی ممکنه قیامش علت دیگری داشته باشه علتش مثلا قیام برک باشه. بکرم بیز بوم که من نگفتم. من گفتم اگر علت قیام ام زید باشه این نمیشه ام به این خاطر وای نمیسته این مقدار رو لو میگه که جواب من مستلزم فعل شرط منه فعل شرط من شده مندفی جوابش هم از این جهت میشه مندفی نه از همه جواب لذا ببینید میگه و حل. و حل امرن قیامون آخر آیا حالا برای قیام دیگری، غیر و لازم ان قیام ز غیر لازم بر... از قیام زد غیر قیامی که از قیام زد سبب شده مسبب شده. آیا هست یا نیست اصلا به این کاری؟ نداره؟ و حل امرن قیامون آخر غیر و لازم ان قیام ز شده؟ اولا یا قیامی؟ نیست اولا آیا قیام دیگری برای امر حد غیر از این قیامی که سببش قیام زیده یا نیست میگه هیچ تعرضی نداره لیس الهو تعرض اون فر کلام برای او تعرضی در این کلام نشده لیس الهو تعرض اون فر کلامه لذاره. به این مطلب اصلا تعرض نداره کاری به کاری این مطلب نداره و عبارتو ابن مادهش به تثیر یقتزی امتناع مایلی مایلی یعنی شرط اختزا میکنه امتناع شرطش رو همین چیزی که ما گفتیم و التزام مهول تالی و ملتزم بودن ماルダーن بودن این فعل شال برای تادی یعنی جواب ها. یعنی سباب و مسببیت رو میگم اما اینکه آیا جوابش منتفی است این رو دیگه نمیگم اینجا حسابی توضیح دادم که اینو همین حاشیه رو بفهمین همین مطالبی که من گفتم چه اینو لازم بیشترین متن بگیرم میگه و بر برمازی و این لو که ارادات شرطی اختصاص به فعل ماضی داره ونو مو ولو این که اون ماضی چی باشه؟ تحویلی باشه ممید ممکنه یه جایی داخل بشه بعد. چی؟ فعل مستقبل ولی اون فعل مستقبل مثلا حکایت حاله باید تعویله به مازی بره چون حرف شرطه برای مازی مشخص شو پایین هاشیه یک پایین رو نگاه کنین ولو ما اولا مثل لویفی کفا لو یفی یعنی چی؟ یعنی لو وفا میگیم خب چرا نکنی لو وفا میگیم فعل مزاره ها بود برای اینکه استنرال رو بفرمین یا برای خاطر اینکه حقایت حال رو بکنه ولی اینجا یفی به معنای وفا میکند نیست بلکه به معنای وفا چطور لمبه سر فعل مزاره میاد معناشو میکنه ماضی لو هم اگر میاد معناشو میکنه چی؟ مشخص، لا و معبله. تمام شد و به معنی ن شرطیت و گای و دو به معنی ن شرطیه میاد مشخص به معنی ن شرطیه میاد یعنی چی؟ یعنی برای مستقبل میاد برای مستقبل دیگه عدات شرط مازی نیست و به معنی ن شرطیه مثل ن شرطیه میشه مثلا من بگم لو تزره از ربو یعنی ام تز ربو از ربو رب. فقط فرقش با ام میشه چی؟ اینکه که میده لو نمیده همی ماشقه شد خب. میگه و به معنی این شرطیته بلیست جازمتن خلافن لبعضه هم میگه برخلاف بعضی ها که قبول نکردن که لو به معنی شرط بعضی رو گفتن نه لو به معنی شرطیه. و به معنی لیتن این منظور از خلافنده بعضیم یعنی بعضی رو شدن که جزم میده با نه اینکه که شدن چیزه و به معنی نشرتیت ولیست جازمتن میگه ما میگیم به معنی نشرتیه میاد و جازمه دیگه نیست بعضی با این لو چه کردن جزم هم یعنی وقتی به معنای نشارتیه شده، گفتم مثل حکمین شرطی داره یعنی میگیره جنس. قلاوند ورده. و به معنا لایتا، لو تمنی بهش میاد. و گای اوقات لو به معنای لایتا میاد، برای تمنی. به معنا لایتا. نهو لو ان لنا شرتا. لو ان یعنی گای گفته که چی؟ لایتلانا ان انه. اگر بعد از لوبیات همیشه ان خونده میشه اینو که میدونید دیگه که گفتیم من برای میشه فایل یه سبته مقدر یعنی لو سبت لنا کذرت همیشه ان خونده میشه و فایل یک سبته مقدر کر یعنی چی یعنی رجعه یه برگشتن هایی که اون دنیا وشون خرابه میگن لو لنا کردنن یعنی ای کاش برای ما یه برگشتن دیگه به این دنیا بود ف دنبالش داره ف من از تا از آدم های صالح میشه بود. این که دنبالش گفته ف نک مزاره بعد از ف شده منصوب چرا شده منصوب؟ ها؟ به دلیلی که لجواب طلب باقا شده طلب دودونه؟ ها؟ لعیتا مرحوم شیخ باید اون دنباله رو نرم میکرد تو ما میتونستیم بهش استدلال کنیم و چه دلیل ما میگیم که این لو اینجا به معنی لایت است؟ به این دلیل که چی؟ که اولا تمنیه یعنی یک چیده محالی رو اونو آرزو کردن برگشتنه به این دلیل دوباره یک بعد ثانیان فن نکونه فعل مزاره شده. بعد از فا در جواب طلب باید منصوب میشه پس این لو باید به معنای چی باشه؟ طلب باشه خب اونا یه چیز محالی رو هم طلب کردن میشه طلب چی؟ محال طلب محال وارد است از لیده یعنی تمانیم. لو ان نه لنا کردن لنا خبر مقدم کردن اسم معفر انم انم که گفتیم با اسم خبرش تحبیل به میشه فنکونه هم که؟ یعنی فنکونه فعل مزاره بعد از فا در جواب کلم شده منصول به عنه مقدر لو اندلنا کردن این هم یکی و یک دیگه هم داریم لوی محصول حرفی تو بخصی محصولات حرفی اول بحث مصولات خود و مستری یتن یعنی محصولتن حرپی یتن و قد مزد و این مثالش گذشت مثال اونجا چی آیا وادو لو يعمر الف احدكم لو یو الف مشخص یا این پایین یا آیه دیگه‌ای رو نگاه کنید مثال زده تو آشیه ود دو ود دو لو تو که لو مصدریه گفتش اکثرا بعد از ماده ود میاد ود دو لو تو تنو و ود دو یعنی دوست دارن این مشرکین لو تو تنو لو تو تنو تابع میشه میشه ادخانک و دوست و دو ادهانه که ادهان یعنی مسامحه کاری ماست مالی کردن ما میگیم ماست مالی اونا میگن روغن مالی دو دو یعنی روغن ادهنتو یعنی سرش کلا گذاشتن ماست مالی کردن وقتی میگه این عرب ها دوست دارن تو پا تو از جیم به قول معروف بذاری پایینتر مسامحه کاری کنی در امورات دینی این تو سفت و سخت نباشید لو هنون فید هنون اونا باید مماشات کنن این فید هنون عطف از جای توت هنون یعنی ودو ود ادهانک و ادهانهم ودو ود ادهانک ف ادهانهم یعنی باید تو اول پا تو از اصول پایین بذاری تا اونها هم چیه باید مماشات کنه. ودو لو توت هنون یعنی ادهان تو رو میخوام ف بعدش ادهان خودش میتونی اول طور می بعد میان سراغ رو تو سلامه دیش مستریتن مستر. حالا لولا چیه لولا حرفون ترد و لربت امتناع جوابی به وجود شرطه لولای قالبیه رو داره میکرد لولا حرفیه که وارد میشه برای رب دادن به این که جوابش ممتنع شده به سبب وجوده شرطش لولا علی یان لهالکا اومد. حلاکت اومد ممتنع شده به خاطر وجود علی یانس. ربط لربت امتناع جواب این لولا به وجود شرطه. و تختص به لس و این لولا حتما داخل میشه به جمله اسم. حالا اگر اون خبرش از افعال عموم باشه و ضربل هست بهش میگن لولا یچ چی, چی؟ قالب بینه. اگر خبرش از افعال خصوص باشه و غیر واجبون هست میشه چی از افعال لولای غیر قانونی میگه میگه و یقلب و معها حضف الخبر امکان کنن مطلقن یعنی فعلا عامن و غالب میباشد یعنی لولای غالبیست و یقلب و معها غالب میباشد با این لولا یعنی غالب در این استعمال لولا حذف خبر اوست امکان کنن مطلا اگر کونه مطرح یعنی اگر لولاهایی که بر سر اسم در میاد که بهش میگن لولای امتناعیه لولای امتناعی رو بشموری 80 تاش لولای چیه قالبی هست یعنی لولاییه که بعدش یه جمله اسمیه اومده خبر اون جمله اسمیه چی بوده ها خبر اون جمله اسمیه فعل عام می بوده که واجبه بود؟ نص یعنی لحظه عام می بوده که واجبه بود نص معها حسب الخبر امکان نکونن مطلقاً مثل چی مثالش زدیم لولا علیون لعلک اومد یعنی لولا علیون موجودون لعلک اومد این لعلک اومد جواب لولا است این جواب ممتنع شده به خاطر وجود گاهی اوقات هم ممکنه که چی فعل خاص باشه اون جایی که فعل خاص باشه دیگه هست بگید نمیشه مگر اینکه قرینه داشته باشه مگر این که قرینه دشت دوش هست شد و ایلا هست نمیشه مثل این که بگیم لولا زیدون محسنون علیه لولا زیدون محسنون علیه لحلکتو یعنی چی لولا زیدون محسنون علیه لحلکتو یعنی اگر نبود زید احسان کننده به من من چی میشدم حلاک میشدم حالا وجود زید من از حلاکت نجات داده؟ نه ممکنه زید بوده و احسان هم نبیکرده باز من حلاک میشه وجودش کاری نکرده بلکه چی؟ احسانش یعنی اون فعل خاصش. اون احسانش باعث شده که دیگه من حلاک نشه. اینجا محسنون رو حذف نبیکرد چون اگه حذفش کنن موجودون تردیر میگیرن دیگه خلاف میشه حسبش؟ مگر این که قریه باشه مثلا یه نفر به من بگه هل عهدون محسن الیکه آیا اهدی به تو احسان کرده به من از من سوال میکنه بعد من میگم لولا زیدون لا لک تو به قرینه سوالو او واسه چی تعقیب میگیره یعنی لولا زیدون محسن الینه لا قرینه باشه میشه حسب شه قرینه نباشه حسبش حالت این لولا یه و لولای غیر قالبیه از بحث لولاهای چی, چی امتنایی لولای امتنایی به قالبیه و غیر قالبیه تقسیم شد و به جمله اسمی هم داخل شد ولی توبیخ این اونیه که به جمله فعلیه داخل میشه لولا گای اوقات به جمله فعلیه داخل میشه حالا اگر فعلش فعله ماضی باشه فعلش فعله ماضی باشه میشه برد توبیخ میشه برای توبیخ و تندیم پشیمان کردن توبیخ و تندیم من مثلا میگردم میگم لولا قرعت درسک لولا قرعت درسک یعنی چی لولا قرعت درسک یعنی چرا تو نخوندی یعنی شما نسبت به این مطلب توبیخ میکنم و چکار میکنم پشیمان میکنم از این عملی که انجام ندادم. ولی توبیخ و یختستو به مازی این مختص به مازیست و اگر به مستقبل داخل چه میشه تحزیز تحزیز یعنی چی؟ تشویق تشویقه به شدت طلب به شدت طلب به اجبار به شدت ولی تحزیز ولی عرض و گایی وقتم طلبه به دین البته عرضش خیلی کمه اکثرم برای تحزیز مشخص تحزیز طلب به شدت عرض طلب به نرمی ولی تحزیز ولی عرض فیختستو به مزاره اختصاص به مزاره داره اختصاص به مزاره داره یعنی بعدش به مزاره مثلا من به شما میگم لولا تقر او در یه بار به شدت میگم میگم لولا تقر او در سگ چرا دست نمیخور میشه تغزییز یعنی حتما بخون یه بارم با خواهش میگم لولا تغییر او در سگ میشه پس اگر بعدش به مزار واقعشه ها میشه برای چی طلب اونم طلب به سختی یا به نرمی که اونو ما میتونیم تشکیز بدیم که اینجا به سختی طرف کرده یا به نرمی هست یا که عرض یا تحزیز ولی خب نوت درصد برای تحزیزه ده درصد برای عرضه که مثال میزنم. ولو تعبیلن ولو تعبیلن یعنی اینکه که حتما نباید فعل مزاره بعدش باشه ممکنه بعدش؟ فعل چه چی بیاد؟ ماضی بیاد اما تعبیل به مزاره بره مثل اینکه که تو سوره جمعه میخونید لولا تو صور منافقی لولا اخرتنی الا اجل قریب فا اصد دقه لولا اخرتنی الا اجل قریب فا اصد دقه این اصد دقه تصد دقه بوده و شده تصد دقه سادها اتقام شده, شده و تا به عنوان حرف مزاره اومده شده تصد دقه اصد دقه معلوم شد؟ میگه چی؟ لولا اخرتنی اینو که میگه لولا اخرتنی اون شخصی که تو اون دنیا روز قیامت وضعش وخیم شده به خدایت حالا میگه لولا اخرتنی اله عجل قریب چرا منو به یک عجل قریب یک کمی به این دنیا بردی میگرد حالا او به خدا به تندی میگه یا به نرمی میگه او می دیگه نه یعنی طلب میکنه با خواهش و انتماس نبا دستور رو داده بیدار تحزیز یعنی با قلدری اما اینجا عرضه درخواست میکنه از خدا لولا اخترتنیه لا اجلن فعصد دقه ببینید این چون طلب بوده عرض بوده فعل مزاره بعدش ماده فعصد دقه فعل مزاره بعد از فا در جواب طلب باز شده منصول فعصد. تا اصدت درم پس بنابراین این مثالی که الان زدم هم شد مثال برای عرض هم شد برای مزارعی که چیه؟ تعویلیه مزارعی که تعویلیه یعنی واقعا اینجا اخرتنی به معنای چیه؟ نیست. ولی اون شخص جهنمی چون خیلی علاقه داره که این مطلب اتفاق بیفته به مازی گفته یعنی برخلاف حقایت حال، مستقبل به این ماضی گفته که چی؟ چون خیلی خیلی علاقه داره که این مطلب چی شده باشه. اتفاق افتاده. مش راشو. بزبوخته. لمّا لمّا ترد مضمون جملتن به وجود مضمون اوخر لمّا مثل ازاست. فقط ازا برای مستقله لمّا برای چیه گذاشته؟ ازا قمتا قمتو یعنی چی ازا قمتا قمتو؟ یعنی هر وقتی در آینده تو بیستی من نیستم اما اگه گفتم لما قمتا قمتو یعنی چی؟ یعنی هر وقتی تو در گذشته ایستادی من مثل ازاست ازا مال مستقبل لما مال گذشته میگه لما لربط ترد و لربط مزمون جملتن که جمله شرطشه جمله جوابشه ل مزمونه مضمون یعنی محاصل جمله جواب به وجود جمله دیگر که جمله شرطشه نه و لما قمت قمت حالا آیا این لما حرف است که موقع دیگه میشه محله ارای هم نداره میگم حرفشه گممت فعل و فعل باشد قم و فعل و پال جذاشه راحت او ظرف یا ظرف هست اکثر هم قایلن بگیم که این ظرف ظرف هست. هست خلافه حالا اگه ظرف باشه چه اعرابی داره مثل اضاف اضافه اعرابیش چی بود اضافه می شد به فعل شرق منصوب بود به جزای شرق اینم این هم ظرفون خلاف یکی هم لما به معنای حرف استثنا می آن و حرف استثناه نحو و این کل نفس لما علیه ها حافظه ان کل لنفسن میگید ان این حروف مشبحتون بلعیثا مثلا ما و عملش هم اینجا از بین رفت چون به وسیله لمّا نفی شکسته شد ان کل لنفسن کل لنفس مبتدا لمّا به معنای الا استثناء مفرد ان کل لنفسن ال عل الا عليها حافظون عليها خبر مقدم حافظون مبتدا مؤخر این جمله خبر کل نفس یعنی هیچ انسانی نیست مگر اینکه بر او چیه یک حافظ رغیبی رو ما گذاشتیم زیر نظرش داری. این کل نفسن لما علیها یعنی ان به معنای نیستا میشه لیسا کل نفسن الا عليها حافظون زیرش بنویسید كل نفسن ليس كل نفسن الا عليها حافظون به معنای لیس هست یعنی شرط تنط ان الا عهدند خوندین الا جای لمما لمماش به معنای خب این لمما گاهی جزم به فعل مزاره میده دیگه و جازمتن للموزاره کلم مثل لم لم میده اونم جزمیده و هر دوتاشون چی کار میکنن فعل موزاره رو میارن به مازی و نفیش میکنن و تفترقان فی خمسط اموره اما لم و لمه با هم فرق دارن در چند جهت؟ پنج جهت که اینو توی کتاب ادایه و کتاب حوامل دوتور مفصل امدید که مثلا در لمه توقع هست اما در لمه توقع نیست مشخصه مثلا لما استمرار دارد نفیش اما لم استمرار نداره لما میتونیم نفیش رو بشکنیم یا نمیتونیم بشکنیم نمیتونیم اما لم رو میتونیم بشکنیم در موارد ما ما چیه؟ ما ترد و اسمیتن و حرفیت ما لفظیه که در عربی غایقات اسم غایقات حرف شما باید این دوتا رو تشخیص بده اسمیتن و حرف اول اسمیه ها رو مش فاعل اسمیت و ترد و موصولتان ما اسمیه غایقات موصول به معنی ان الذی و یک لفظ است به جای شش معنا که بهش می‌گویند موصول چه چی, چی مشترک درست که برای چی می کار میرم یا غیر ذبل غیر ذبل درستو که اکثرا برای غیر ذبل وغول 99 درصد ولی برای ذبل وغول هم به کار رفته لتماع و, و ما بنا ها فهم که او ماتا بالا کن بنند مثال برای ذبل وغول هم به کار رفته گفتیم اما اکثرا برای غیر ذبل ترد موصول است و نکره تن موصوف کجا خوندیم نکرتا موسوفتا تو ولاسی یما یادتونه تو ولاسی یما یک موقع میگو ما شمایی چیه؟ نکره موسوف است چی میگفت در صورت رفعی ولاسی یما میشد چی؟ ولاسی یشیع هووزیدون وجودونی یادتون هسته نیست اون هووزیدون رو چی میگره؟ صفت برای ما ما میشد نکره موسوفه به معنای شیع حالا خودش یه مثال دیگه میزنه و مرد تو به ما معجبندک مرر تو به ما یعنی به شیعه. من به شما میگم مررتو تو به ما من مرور کردم به چیزی که به ما به چیزی که معجبندک شما ازش خوش کنید معجبند معجبند الان صفت ماست الان ما رو میگید اسم نکرست موصوفت لفظا مغزی و سکونه از آخرش اما محلن مجروره به ما به چه به این موجبن رو ببین صفتشه لکه متعلق متعلقه به ما این شد ما نکره موجوده و صفتن لنکرته و گاهی اوقات عکس میشه ما میشه صفت برای نکره خودش به مناشه ما میشه صفت برای نکره نهوه لَأَمْرِنْ مَا این ضربون مسئله لَأَمْرِنْ مَا جَدَعَ قصیرون انفهور جَدَعَ انفهور. این ضربون مسئله میگن یه کاسه زیر نیم کاسه است این ضربون مسئلهش همیده جَدَعَ یعنی برید اما بریدن بینی رو میگن جَدَعَ قطیر اسم آقاییست انفهو یعنی بینیش را رو یعنی قرض کرده از آقای قثیر بینیش اش را ل ما یعنی ل غیر معین ل عظیم او برای یه کار مهم می ل امر مهم جدا قثیر مشخصه. این داستانش در اینه این آقای قصیر وزیر یک آقایی بود در یک مملکت حالا من به طور خلاصه رو میگم وزیر اون بود بعد این با اون مملکت مقابل که دشمنی داشتن این بهش گفتش برا خاطر که ما بتونیم از داخل به اونها ضربه بزنیم من بینی خودم رو میبرم، نمیرم داخل اونها میگم شما بر من غضب کردی و من رو از دربار خودتون ترد کردید و فلان من در بین اونها جا می بعد دروازه های شهر رو باز میکنم شما بیای داخل رفت و این کار رو کرد و قوم مقابل شکست کن. بعد از اون اگر یه موقعی یه مطلبی اتفاق بیفته که یه نفر یه ظاهر سازی بکنه که عالم احساس کنه پشت این کاسه یک نیم کاسه ایست بر می, می چی؟ ما یعنی برای یه کار مهم می جده در آقای قصیر دماغ رو دونده یعنی این ظاهرش داره اینطوری نشون میده باطنش یک حیلهی یک مکری یک خودعی پشتش هست این جدعفل قصیرون فائل انفهوم افعول هش پر میگده به قصیر این امرن متعلق به جدعه ما صفت امره یعنی امرن ما یعنی امرن غیر معینه و ما یعنی غیر معین صفته لعمر عظیم مهم برای یک کار غیر معینی یا یه کار عظیمی جده قصیران انفه بود بریده از قصیر پس, پس این ما چی؟ سفر برای عمر محلن مجروب و شرطیت از زمانیتن بای اوقات ما میشه مای شرطیه زمانیه شرط رو میفهمونه؟ ها؟ مجرد روزی مجازات ها زمان را هم می حالا یا زمانی یا غیر زمانی یعنی گای اوقات اینو خونویم تو ب کلمون مجازات ها که ما مایه کلمون مجازات حالا عالی گای اوقات زمانیت هم میفهمونه گای اوقات زمانیت رو نمیفهمون رنم مثال میزنه زمانیت یا غیر زمانیت هم من مثلا فرض کنید میگم ما اکلتهو اکلتو یا ما تاکل ہو بهتره که با مزاره بگیم که جزمنده ما تأکل ما تأکل آکل یعنی چی ما تأکل آکل ها یعنی هر چی تو بخوری منم میخورم از وضع ترکیبی هم بهتون یاد دادیم الان یعنی ما تأکل مثل اون من یزلل الله قلاها دیاله میشه ما مفعوله کی؟ تأکل ها؟ اگه بعدش فعل لازم اومده بود این ما میشد چی؟ مبتدا اگر این تأکل هو بود چندتا ترکیب داشت میتونست ما بشه مبتدا تأکل ها فعل شرطش بشه قبل و میتونست بابه اشتغال درست این تو جملات که محل اعرابی دارند که یکیش جمله بود که در جواب شرط جازم واضحه برگردید اون آیه من الله بلا آقادی لخ اونو ما این میشه مای شرطیه ای که زمان توش نبود یعنی هرچی تو بخوری من حالا ممکنه یک زمان هم زمان توش باشه براد و زمانیت رو بفهمونه پایین نگاه کنید توی آشیه غیر زمانیه نوشته یا نه؟ می‌بینید یا نه؟ بالای آشیه دو نوشته و غیر زمانیت نه و قول ایتالا و ما تفعلو یا یعلم قول دارد ما الان مفعول تعل... من خیرن تفعلو مجلوم شده دیگه فعل شرط من خیرین متعلق به یه مبینن و حال هست از برای ما بیانشون میکنه یعنی آنچه انجام بدید از خیرات یعلم هلا خدا اون رو چیه؟ میداند خدا اون رو میداند مشخص حالا برای زمانیش رو نگاه کنید به سال بالا همون قول خدای تالا فما لكم فستقیمو لهمون این فای فستقیمو میپهمونه که اون مامایی چیه شرطیه هست که جمله انشایی در جوابش با فا اومده هر جوابی که طلب باشه فا میخواد میگه میگه ما استقامو لکن یعنی تا هر وقتی که دشمنان در مقابل شما چکای کردن استقامت کردن تا هر وقتی که تا هر زمانی که دشمنان در مقابل شما استقامت کردند پس تقیمو لف و انبه پس شما هم در مقابل اونها چکار کنید استقامت کنید الان این ما رو چی میگی چون زمانه میگی ما مفعولن برای استقامون فعل نه نا منصوب انت مافعولن بی برای استقامون استقامون فعل و فاعل لکم متعلق به استقامو فا فای فای جزاء فیل عمره فیل فاید لهم متعلقه به استقیل مشخص شد زمانیه یا غیر زمانیه و گایی وقت هم ما میشه مایه استقا می ما میشه مایه دکه چجوری تحکیم می کنیم بگید ما مبتده مشخص ولی حرفیه اما مایه حرفیه کدومه اینا اسمی بودن و حرفیه کرد و مشبهت هم بلیستن مای مشبهت هم است که غرف به اسمش نکو به قبرش میده با شرایطی شرایطش چی بود؟ یکی که عملش به وسیله لا شکسته نشه یکی که بعدش اینه زایده واقع نشه مشخص شد و مستریتن زمانیتن و غیر زمانیتن و گای اوقات هم مای مستریت مثل چی؟ اجلس مادام از ایدان جالسه مای مادامه مای چی بود؟ مستریه بود یعنی مابدشو تحبیل به مستریه یعنی محصول حرفی به ما نسو یومل حساب تو محصول حرفی خونده یعنی به نسیان هم یومل حساب مای مستریه حالا گای اوقات گا زمانیه است مثل همون اجلس مادام از زیدون جالس که مای مستریه زمانیه بود برگردتون افعال ناغذت نگاه کنیم و یکم یک مای مستریه است اما زمان رو نمیفهمونه که تو محصولات حرفی اول محصولات حرفی خوندیم به ما نست روی اومد حساب یعنی ونسیان نسیانه به مستر میره دیگه زمان ازش فهمیده پس برای زمانیش اجلس مادام از زیدون جالس مثال برای غیر زمانیش به ما نسو یومل و سلطن بالاش می مایه مای کافه مای زائده سله یعنی چی؟ حروف سله یعنی حروف زیاده حروف سله یعنی حروف زیاده این هم باز خوندیم که بای اوقات ما مای زایده است مثل این ما تدعو فلاحول اسماعول حسنان این ما اون ما چی بود زایده بود یا خوندیم توی بحث این مخففه از مسقله این کلون لما لیو نه هم گفتیم ما ما چیه زایده شمازه بین رسولام خاصله یا تو کتاب هدایه خوندیم فبما رحمتم من الله لن تلمانده. و به ما رحمتن اون به رحمتن رو بین جار و مجروم ما چیه؟ زاهل هست چند تا مای زاهله ما اون که نقشی نده. و کافه یکم هم مای کافه هست مای کافه کجا داخل می شد؟ ها؟ به اینه و اینه ها؟ و حروف مشبهت ها که اونا کار می که از عمل؟ می مای کافه حل میگه حل حرف و استفهانه یه دونه بیشتر نیست حرف استفهان میگه چه فرقی بین حل و حمزه میگه حمزه را اول این بحث خوندیم هم برا تصور میامد یعنی سؤال از مفرد هم برای تصدیق میامد یعنی سؤال از نسبت جمله آه کلام میگه وطفتر قعن الحمزته به طلب تصدیق وحره اما حل فقط برا طلب چی به کار میره درستی. یعنی فقط باش نسبت سوال میشه دیگه مفرد ازش دوال نمیشه لذا امه متصله هم بعدش گفتیم نمیشه چرا چون از سوال از مفرد نمی این یک فرق و عدم دخول علال آتف نگاه کنید مثلا اگر حرف عطف با حل بیاد حرف عطف جلوتره یا حل حرف عطف یه نکو علال و حل یه لک. اما اگه همزه با فاوی ها چی؟ همزه مقدم میشه میگیم افلم یسی روز الارض چرا؟ به که گفتیم همزه چی داره؟ تدارته، تامه داره یعنی حتی بر حروف عطف هم مقدم میشه اصل حروف استفقام دیگه اصل عدوات استفام همزه است چون تدارت تامه داره حتی بر فا هم مقدم میشه درست؟ عدم دخول علال آتف و شرط این شرطیه با حل نمیاد عدم دخول شرط یعنی این شرطیه با حل یه جا جمع نمیشه این حل نمیشه میکن. ولی با همزه میاد این افع این ماته تو قرآن داریم افع این ماتر او قتل. این قلبتون الان احوا بکن افا این ماتف بینید افا این همزه همزه استفقان با چیه؟ آتفه است. چون همزه صدار استفقان میداشت و چه بود؟ این مثال برای هر دو تا سال یعنی هم برای عدم دخول برای آتف هم برای شرط افا این این شرطیه ببینید اومده باش ماتا اوقتله آیا اگه پیغمبر از دنیا رفت یا شهید شد انقلبتون الان اعقابه کن شبه هم میگردید به جاهلیت خودتون دینتون به محمد پستگی دارد انقلبتون الان اعقابه کن بشه یکی دیگه از مطالبی که تو بحث باب اشتغال خوندید اینه که حمزه ممکنه بعدش جمله اسمیه بیاد مثلا از این دن عرف از زیدن عرفته بود ممکنه اینو زیدن بخوانید ممکنه چی؟ زیدن بخونید هر دو درسته بعد از همزه ولی اونجا گفتش کدومش بهتره؟ منصوب خوندن بهتره چون گفت همزه بیشتر به فیل بخونیش از زیدن زد اما اگر حل باشه بگیم حل زیدن رعیته بود حل زیدن عرفته بود واجبه که حتما چی بخونیم؟ منصوب بخونیم چیز دیگه نمیشه. بخونیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه که گفتیم اسم اگر باشه بعدش و بعد از اون اسم فعل باشه حل چیه؟ داخل بر این جمله اسمیه به شکل مرفوع نمیشه میگه و اسم بعدهو فعلون حالا یه مثال من میزنم ببین کدوم از این مثال ها درسته حل زیدون قامن حل زیدون قامن عزيلون قامه. این روش درسته. از ایدون قامه درسته اما هل ایدون قامه درست نیست. چرا چون داخل شده به اسمی که بعدش فیل ول اختصاص به ایجاب. خلاص بنویسید اثبات مثبت. پل مختص به کلامیه که مثبته. یعنی استفهام از منفی بگید نمی‌کنه. هل استفهام از منفی نمیکنه، اما حمزه استفهام از منفی میکنه. ولا یو پس گفته نمی شود هلم یقون هلم یقون چیه؟ غلطه اما به خلاف همزته به خلاف همزه که برمحفی هم داخل میشه. شه و علم نشرح لکه صدرک اینو بگم حسن کلامش کلامشو با چی خاتمه داد؟ با آیه یه علم نشرح لکه صدرک تمزمزه استفقام لم نشرح فیم زمین نهنو فائلشو لکه متعلقه به نمشره نشره صدرک مفهومش مزاق مزاقه آیا ما وزعت ندادیم به سینه تو که بتونی این همه مشقات و این همه مطالب رو تحمل کنیم علم نشره لکه صدرک اللهم نباید ببینید خودش حالا که رسید به اون این دعارم خودشه اللهم مشره صدورنا به انوار معارض خدا یا گشایش بده سینه های ما رو به انوار معارف که انوار معارف داخل همونطور که پیغمبر تو ایک بار و نبر قلوبنا به حقایق لطائف و نورانی کن قلوب ما رو با لطائف حقیقت حقیقت لطائف واقعیت لطیقه ها و نقاط دقیق حقایق لطائف وجعل ما اوردناه و پیهاز هلورقات خالصا لوجه کل کریم وجعل و قرار بده ما آوردناهو آنچه را که ما آوردیم وارد کردیم ما را فی هازه الورقات در این چند ورق خالصنده بچه این عمل ما را خالص برای بچه خودت قرار بده و اونم بچه کریمه و تقبل و مننا و بپذیر این عمل را از ما این نکنده سمیه الانی. تو بسیار شنوا و دانایی به خفیدیات است و انا نتوصل و علی که به حبیبه پس همانا ما متوصل میشیم میچسبیم به حبیبه تو محمد سید مرسلین فیانبر اسلام که سرور عمه مرسلین است و آلهی و به آلش علی ائمه محسومین ائمه محسومین سلامات الله و سلامه علیه از کتاب سمدیه تمام شد وقت هم دارید یک هفته بیشتر شاید تا دو سه هفته مورده تا مورده میشینید یک دوره کامل اگه بخواید مباحثه بکنی یک دوره کامل انتها یه سمدیه